افسونه افسانه به نام خدا سلام افسانه که در زبان پارسی میانه به اون افسان میگفتند به معنای داستانی خیالیه که در گذشته بین عموم مردم رایج بوده و به احتمال زیاد واقعی تصور میشده یا ممکن زمانی اونو واقعی تصور میکردن افسانهها ها بی حکمت روایت نشدن بلکه در دل خودشون پند و اندرزی برای شنونده و یا خاننده دارن افثانه ای رو که در این برنامه میخوایم خدمتتون روایت کنیم یک افسانه ایرانی برگرفته از کتاب افثانه های ایرانی تعلیف محمد قاسمزاده که امیدوارم از شنیدنش لذت ببریم در گذشته بسیار دور در روستایی دور افتاده کنار آسیابی قدیمی پیرزن و پیرمردی توی کلبه کوچیکی زندگی میکردند. سالهای سال بود که پیرمرد کنار آسیاب میرفت و پرنده ها رو به دام می و به بازار می برد و میفروخت. پیرمرد از شغلش راضی بود اما زنش همیشه بابت وضع زندگیشون شاکی و گلمند بود به به چه پرنده های قشنگی بیا خانم بیا ببین چه پرنده گرفتم بیا ببین چیم قشن بقش میکنیمت یه جوری سر و صدا را اندهده یکی ندونه فکر کنه موروری دو علماس کردی یه که پرنده که همه سر و صدا نداره به جای این که قرب به جونم بگو خدا رو شد زن اینا نعمته خدا رو شد که اموراتمون با فروش همین پرنده ها و به کسی محتاج نیست وا. تو به این اون زدن میگه امورات من. اون وقت بعد خوشحال باشیم که دستمون جلی کسی در از نیست دارید خوشه آه. ناشکری نکن زن ما که تا به امروز مشکلی نداشتیم تو امید خدا از امروز به بعدم مشکلی پیش نمید ولی من از این زندگی دیگه خسته شدم من یه چیزا میخواد که تو نمیتونی برام جفت جفت کنی می میدونم اینقدر به خاطر دستانگیر نداری سرکوفتم نزن زن سرکوف نیست فقط خواستم بدونی که اینقدر که فکر میکنی اموراتمون رو نمیذره باشه زن باشه اصلا اشتباه کردم گفتم بیا این پرنده ها رو ببین برو برو تو مطبخ به کارات بره <تصفيق> مطبخ؟ یه جوری میگی مطبخ انگار تو مطبخ بار از خوراکی و باربون آه امان از این زبون نیش دارت زن چقدر تن کنایه میزنی کست نمیشی از این رفتارت باشه بابا باشه من میرم تو مطبخ تا تو به کسب و کار پر رو نقد برسی و هلارت هلا بزدی. امان از این زبون نیش و کنایه دارت <تصفيق> بر چه پرنده های خوشگلی الان میبرم تون بازار رو میبرونجمعتون با پولش لغن و برنج میخرم خب گرم همه پشت سرم بری تو خ زود بشزه باشین حال که همه پرنده ها رو ردیف کرده بود و میخواست اونا رو توی خورجین بذاره تا به بازار ببره نوبت رسید به پرنده ای تلایی که یک گوشه کس کرده بود همین که پیرمرد خواست اون پرنده رو داخل خورجین بذاره پرنده شروع کرد به حرف زدن نه نه نه, نه. نه پیرمرد نه کی من. من. تو؟, تو کی هستی؟ پرنده ی که میخوای بندازیم تو خورجه تو تو حرف میزنی آه, آه، منو با خودت نبری بازار نبرم برای چی تو از همه پرنده ها خوشگلتری حتما پول خوبی بابت خریدنت میدم چرا نباید با خودم ببرم چون بچه هم تو لونه تنها اونا گروزنه من اومده بودم نزدیک های آسیاب تا برای بچه هام دونه و آزوغه پیدا کنم که افتادم تو دامتو هلونم اینجا ولی من نمیتونم آزادت کنم برای چی؟ برای اینکه به پولی که بابت خرید تو بهم میدن نیاز دارم دا، تو تو میخوای با اون بور چی میخوام باهاش برای خونه بنچن بخرم شایدم برای زنم رخت و لباس باشه قبول تو منو آزاد کن برم پیش بچه در عوض منم همه آرزواتو براورده میکنم چیه؟ تو نیم وجبی همه آرزوهای منو براورده کنی نه راست میگم تو اجازه بده من برم پیش جوجام در عوض من هر آرزوی که داشته باشی براورده میکنم خب م... م... م... م... م... نمیتونم بهت اعتقاد کنم بذارم سرم به... باشه باشه همین الانی آرزو بکن تا من براوردش کنم داری سر به سرم میذاری پرنده ایتا نه پیر مرد نه تو منو آزاد کن پردم به من بگو چه آرزوی داری تا اونو براورده کنم باشه باشه ام آرزوی من اینه که از زندگی کنار این آسیاب خراب خلاص بشم و بازنم به یه خونه خوب و بزرگ برم یه خونه تر و تمیز که بتونیم به خوبی توش زندگی کنیم. باشه باشه تو همین الان همراه من بیه ها کجا؟ مگه یه خونه خوب و بزرگ نمیخواد؟ آره ولی... ولی چی؟ به من اعتماد کن بیمه بذار بزنیم یه کپی تو با هم به یه جای خوب بریم عجله کن زود باش تا خوب باشه مرد و زنش همراه پرنده تلایی به راه افتادن. پرنده تلایی اول سراغ بچه هاش رفت و به اونا قضا داد و بعدشم پیرمرد و پیرزن رو به یک خونه بزرگ و قشنگ در یه روستای خوش آب و هوا برد. بعدم یکی از پرای خودش رو به پیرمرد داد و بهش گفت که هر وقت با من کاری داشتی این پرا آتیش بزن تا من خودمو به تو برسونم. پیر مرد و همسرش زندگی خوبی رو توی اون خونه شروع کردن اما یکی دو سال بعد پیرزن از اون خونه خسته شد و شروع کرد به دادن. زدن بای بای بای, بای سرم آه، چی شده؟ چی شده؟ می چی شده؟, می چی شده؟ پس از کی تو شروع کردی به داده بیداد کردن. از این زندگی دیگه خسته شدم من. از این همه صدا خسته شدم. کدوم سر و صدا؟ با تو این همه صدا رو نمی‌شوی؟ چه ته مار خروس کلاغ سگ گربه الاغ ای چه می‌دیم شطور؟ آ این بابا این صداها برای اینه که ما تو روستا زندگی می‌کنیم دیگه. باید هم این صداها رو بشنویم. ولی من دیگه خسته شدم. خیلی خب، می‌خوای به همون کلوه خرابه که کنار آسیا بود؟ آه. به این تنه میزنی؟ نا باور کن دارم میگم این خونه که از اون خونه خیلی بهتر و بزرگ داره پس ناشکری نکن و قانع باش تو را نمیدونم ولی من دیگه نمیتونم تو این خونه دوان بیارم خسته شدم از این همه سر و صدا میگی چی کار کنم زن؟ من نمیتونم تو رو به یه جای بهتر از اینجا ببرم هیچ پولی ندارم همین خونهم از سرمون زیاده اگه بخوای میتونی یه جای بهتر زندگی کنی. چطوری؟ مگه اون پرنده تلایی به تو یه پر نداد که هر وقت کارش داشتی؟ اونو آتیش بزنی؟ آره خب دیگه پرش آتیش بزن و وقتی اومد اینجا بیش بگمار ببر شهر اونم به یه خونه بزرگ که بتونی بی سر و صدتو زندگی کنی؟ بی بابا مگه اینجا کشه؟ تو اگه بخوای میتونی اینجا بمونی ولی من محالی دیگه بتونم تو این خونه دوان بیارم ست باش ست باش دیگه پر پرنده رو آتیش بزنم دیش بگو چه آرزی داری عزیزم خیلی خوب, خیلی خوب. باشه باشه باشه پرد به ناچار تسلیم شد و پر پرنده رو آتیش زد و کمی بعدش پرنده حاضر شد. پیرمرد و پیرزن آرزوشون رو به پرنده گفتن و پرنده هم اونا رو به خودش به شهر برد و یه خونه بزرگ و قشنگ رو به اونا نشون داد. پیرزن و پیرمرد وارد اون خونه شدن. بعدش هم پرنده تلایی مثل قبل یکی از پراش در آورد و به پیرمرد داد و گفتش که هر وقت با من کاری داشتی پر رو آتیش بزن. پرند رفت و پیرزن و پیرمردم با خوشحالی توی اون خونه ساکن شدن <تصفيق> وای وای اینجا ببین ببین چشم از یه بازارگی داره دیگه خیال راحت شد حالا ببینم میتونی تا پایان یا تو این خونه زندگی کنی و غور نزنی معلومه که میتونم اون چی بود اون چه خونه ای بود همه سر و صدا همهش داده بیداده پرنده و مرقه خروزه و سگ و, و چه میدونم چی چی چی به این خونه خیلی خوبه تا آخر عمرمون باید هم اینجا زندگی کنیم دیتی گفتم دیتی گفتم اون خونه خوب نیست دیتی گفتم ما لیاقتمون یه خونه بزرگتر و بهتره توی شم بله گفتی ولی محض رضای خدا دو روز دیگه عوض نکنی بری یه جای دیگه که من یکی از جام جام نمیخورم نه بابا چی جایی بریم بهتر از اینجا بزرگ جادار خوشگل تو شهر از همینجا میشه همه جای شهرو دید. کافیه اون پنجره بشین و از نگاه کردن بشن لذت ببرید. درسته غیر از اون، از شیر مرتجون آدمیزاد تو شهر به این بزرگی گیر میاد. دیگه نمیخواد برای یه خوراکی فرسنگها راه بریم. آره، میگم دست اون پرنده طلایی درد نکنه که همیشه ما رو خوشحال میکنه خب حالا از این حرفا بگذاریم نهار چی داریم؟ هرچی تو بگی عزیزم مطبخ پر از خاراکی های رنگ ها رنگه <تصفيق> میرم یه مرغ بریون میرم تا دوتایی با هم بشیم کنار این پنجره و مم... نهار بخوری نهار نکنه زن سر در یکی دو سالی از اقامت پیرزن و پیرمرد توی شهر گذشت اما پیرزن بازم شروع کرد به قر زدن به جون پیرمر. اون مدام از ای که توش زندگی میکردن ایراد میگرفت و به همسرش میگفت آرزوهای دیگه ای داره پیرمرد خیلی مقاومت کرد اما در نهایت تسلیم خواسته زن شد و پری رو که پرنده تلایی بهش داده بود آتیش زد چند لحظه بعدم پرنده تلایی اونجا حاضر شد سلام پیرمرد. میبینم که بازم با من کار داری ام... چی بگم پرنده تلاییم راستش خودم که کاری باید ندارم بر... از خونه اون زندگیم راضی آمدیم زنم با تو کار داره چه کاری؟ ببین پرنده دست در نکنه میدونم که تو خیلی برای من و شوورم زحمت کشیدی و هر بار که ما آرزوی داشتیم براورده کردی اینا به خاطر محبتی بود که شوهر در حق من کرد راستش میدونی چیه؟ من دیگه تو این خونه خسته شدم من دلم زندگیم تغییر کنه چه تغییری؟ من که میگم گم خونه و زندگی خیلی هم خوبه ولی زنم راضی به این زندگی نیست چه آرزویی داری؟ دل من دلم میخواد خواهد شوبرم حاکمی این شهر بشه و خودمان بشه بله که این دیگه چه آرزوی زن من فکر می کردم آرزو کنی که ما رو ببره به یه خونه بزرگ تو با من کاری نداشته باش رو ولید کنن هنوزم هم دلم میخواد کنار همون آسیاب زندگی کنی ولی من دلم میخوادی آدم مهم بشم دلم میخواد زندگی خوب داشته باشم از بچهگی دلم میخواد که ملکه بشم آخه من برای حاکم شهر شدن خیلی پیرم تو هم سن و سال دیگه به ملکه بودن نمیخونه اصلا اینطور نیست نه تو پیری نه من خیلی هم خوب و منم برای ملکی شهر شدن خیلی مناسبم. ز... زود باش پرنده زود آرزوی منو برابا بکن دیگه ندارم شما مچمئنی که میخوان حاکم شهر بشین از من هیچی نپرس پرنده ایتلایی چون من دیگه نه آرزویی دارم نه خواسته ای از بعض زندگی من رازی هم. پرنده جون ببین با اون کاری نداشته باش حرف منو بشنا من میگم شوهرم بشه حاکم شهر خودمم بشم ملکیش شهر زودشی خیلی خوب باشه همین الان شما رو به آرزود فهمیدی؟ دستت نکنه یعنی یعنی با این حساب من قراره بشم حاکم شهر بله پیر تو از همین الان حاکم این شهر یا همسرتم هم ملکیشه شهر آ آ کن, صب کن. آه آه آه آه آه این هم یکی دیگه هست پرای من بگیر هر وقتم با من کاری داشتی اونو آتیش بزن تا من بیام اینجا کنار شما ها؟ دست درد نکنه پرنده تلایی دست درد نکنه ماهی از برآورده شدن آرزوی بزرگ پیرزن گذشت پیرزن و شوهرش حالا دیگه ملکه و حاکم شده بودند و حسابی خوش میگذروندن و از زندگیشون لذت می بردن. هیچ چیز و هیچکس نمی هم نمیتونست مانع اون همه شادی و خوشحالی بشه حالا همه مردم شهر مطیع دستورات حاکم و ملکه بودن. همین موضوع هم باعث شده بود که به زمین و زمان دستور بدن و با قرور با همه رفتار کنن میبینی من؟ ببخشید سر برم میبینی جاه و مقام و پول و ثروت چقدر خوبه؟ بله بله خیلی خوبه عزیزم دست درد نکنی که از پرنده تلایی خواستی که من حکم شهر بشم و تو هم ملکه من میدونم دارم چی کار می کنم می چه آرزویی بکنم که بتونه زامن شادی و خوشبختیمون باشه تو ایشه هیچ کس جرعت نمی رو حرف منو رو تا حرف بزنه درسته اگرم کسی ترس کرد چیکار کار زود دستور میدی اونو گردم بزنن <تصح> بله <تصح> حاکم بودنم عالمی داره من که فکر نمی بالاتر از حاکم شدن آرزوی داشته باشم که از پرنده طلایی بخوام تو چی فکر میکنم؟ امان از دست تو امان تو به هر جایی که رسیدی فکر کردی از اون بهتر نمیشه نکنم قبیگه از حاکم و ملک بهترم هست آه سربرم. <تصح> راستش هنوز بهش فکر نکردم ولی او ولی او ایش ای بابا این دیگه از کجا پیدا شد بار کنا ببینم بار بار داری به کی قر میزنی او به اون ابری که جلوی آفتاب گرفته خیلی سرم اومدم تو حیات تافتاب بگیرم در کنار همسرم ولی میبینی که این ابر لعنتی اومد جلوی خورشید رو گرفت و همه جا رو سایه کرد مهم نیست عزیزم کمی صبر داشته باش الان از جلوی خورشید میره کنار. باشم. یعنی میگه اجازه بدم که اون عبر لعنتی و مغرور مزاهمه من بشه؟ منظور چیه؟ ابر دیگه؟ مگه دستمون بهش میرسه که بخوایم بکشونیمش با این؟ ازت تعجب میکنم، سرورم یعنی تو حاضری دست و دست بذاری یا کاری بری من نکنی؟ چه کاری؟ من که دستم به اون ابر نمیرسه که بخوام کیشش کنم بره اون ورتر رو آفتاب به جنابالی بخوره بله، میدونم که دستت به اون نمیرسه. ولی میتونی پر اون پرنده تلایی را آتیش بزنی تا پرنده تلایی همین الان بیاد اینجا و ازش بخوام که این ابر لعنتی رو از جلوی خورشید کنار بزنه بکنم، چی گفتی؟ زده به سرت زن، این دیگه چه آرزوییه همین که گفتم من ملکی این شهرم میخوام همین الان اون ابر از جلوی خورشید بره کنار ولی من روم نمیشه از پرنده تلایی چنین چیزی رو بخوام اوه. به خدا رو میخواد آدم همچین آرزویی داشته باشه چرا روت نمیشه سرورم تو حق اون پرنده لوت کردی اونم مجبور آرزوها تا براورده کنه بله من یه بار به اون پرنده لوت کردم ولی در ازای اون لوت پرنده طلایی هم بارها و با بارها آرزوی ما رو کرده کرده سان دیگه روم نمیشه بهش بگم به زمین و زمانم امر کنه که مزاحم منو تو نباشن آخه یه پرنده چطور میدونه ابرا رو جابجا کنه باشه باشه اگه تو رود نمیشه فقط اون پر آتیش بزن تا پرنده بیاد اینجا خودم میدارم چی بهش بگم و چی ازش بخوا دستوردار زن این همه زیاد خواهی رواد نیست خدا قهرش میگیرم میشه هر کاری رو که میگم انجام بدی سرورم تو قبلگی تو کارا نبیاری موضوع ناآوردن نیست ما دیگه هیچی نمیخوایم که خوشبختیمون کامل بشه همه چیز داری خونه، زندگی، اعتبار، احترام، پول، سربت نه نه, نه, نه, نه, نه. اون عبر لعنتی باید بدونه وقتی من ملکه درم افتاب میگیرم نباید بیاد جلی خورشید یالا همین الان اون پر آتیش بزن تا پرنده تلایی بیاد اینجا زود باش آی خدای من امان از دست تو زد امان از دست امان. تو پیرمرد که حالا حاکم شهر شده بود رفت و پرو از داخل صندوقچه در آورد و آتش زد. تولی نکشید که پرنده طلایی حاضر شد و از پیرمرد دلیل آتیش زدن پر رو پرسید. پیرمرد خجالت کشید که آرزوشو به پرنده بگه ولی پرنده برای همین حاضر شده بود که آرزوی پیرمرد رو برآورده کنه. راستش من من من نمیتونم چی بگم پرنده تلایی چرا افتاده؟ یفتده خدای نکرده مشکلی دارین که آزارتون میده بله پرنده تلایی یه مشکلی بزرد چه مشکلی؟ من یک ساعت پیش به رسم عادت اومدم تو باغ قصر تا آفتاب بگیرم مه. اما یه دفعه یه ابر مغرور و لنزی سرکلش پیدا شد جلوی و گرفت و دیگه آفتاب به من نرسید ها ما رو به بخش پرنده طلایی این چندمین باره که مزاحمت میشیم تا آرزمونو براورده کنیم تو تا... یه بار جونی من نجات دادی پیر منم باید دینمو به شما ادا کنم خدا خیرت بده حالا ببینم میتونی ابرو کنار بزنی ام. یا نه. معمولا کارا یکی در زمین هستن میتونم به زودی انجام بدم باشه باشه حالا مهم نیست اون ابر به زودی از جلوی آفتاب کنار میره و زنم میتونه به آفتاب گرفتنش ادامه بده ها؟ یعنی چی؟ یعنی آرزوی ملکه برات مهم نیست مهمه ولی با... با... میبینی پرنده طلایی میبینی؟ این ما فقط خودش و آرزوش براش مهمه نه باشه باشه با ما بحث نکنی من آرزوی شما رو براورده میکنم آه. دست درد نکنه حالا ما باید کنی؟ باید این خونه و زندگی و قصر رو همینطوری بسارین و دنبال من بیاین کجا باید بیاین؟ باید انقدر بیاین انقدر بیاین تو بیتونیم ب... ازش بخواییم که از جلوی خورشید کنار بره باشه را بیافتیم من آمادم پس تو هواگارانی نشده بریم که من خیلی زود آرزوتونو رو براورده کنم باشه تو پیرزن دنبال پرنده طلایی به راه افتادن و رفتن رفتن و رفتن تا از شهر دور شدن پرنده به پرواز در اومد و پیرزن و پیرمرد هم به دنبالش حرکت کردند اما ناگهان باد شدیدی شروع به وزیدن کرد من, من چشمم جایی نمیبینه زن تو میتونی ببینی اون پرنده کجاست یا کجا با دنبالت بیان کرنده چی نبوده تو به این که میگم برگردیم من نمیتونم ادامه بدم یعنی چی برگردیم ما این همه را آمدیم تا اون ابر لعنتی رو کنار بزنیم و وقتا میخوایی برگردی. ها با لحظه به لحظه داره بدتر میشه اینجوری نمیتونیم دوون بیاریم هر دبون تو این بیابون تلف بشیم تا وقتی که پرنده تلایی همراه مونه هیچ اتفاقی برامون نمیان اگه من و تو همین الان افتادیم مردیم آه. که از دست اون پرنده کاری ساخته آه. نیست اون پرنده سختترین آرزو رو براورده کرد چطور میتونی بگی از دست اون کاری ساخته نیست آه. چقدر با من بحث میکنیم زن من و تو سن و سالی ازمون گذشته نا نداریم تو همچین باد و خاکی تو این بیابون راه بدیم من میتونم تو اگه نمیتونه همینجا بشین و با چشمت ببین چه بلایی به روز اون ابر مقرور میاره. به فکر خودمون نیستی به فکر اون پرنده باش مگه با اون جسته کچیکش چقدر میتونه پرواز کنه تا به ابر برسه آه. تو لازم نکرده قصه پرنده رو بخوری اون زرنگ تر از ماست آه. هگه نه پرندی اه. پرنده تلایی پرنده پرنده تلایی پرنده تلایی کجاست پرنده تلایی صدای منو میشنوی میشنمی پرنده تلایی میچ شدیم زن پرنده رو گم کردیم امکان نداره اون همین اطرافه پرنده اه. هرندی <تصفيق> <ای> چاله خدا <تصفيق> این دیگه چه مصیبتی بود این چه هباییه من که چشمام جایو نمیبینه ببینم زن تو میتونی آسمونو نگاه کنی مگه نمیبینی چقدر خاک تو آسمونه آی خدای حتما من بلای سر اون پرنده اومده که صدای ما رو نمیشنم بعد وقتمون کردی زن آوارمون کردی نفوس بد نظر شاید تو این بعد صدای ما رو نمیشنمه بیا با هم صداش بزنیم پرنده <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> ما را نمیشنبه. ما گمش کردیم گمش کردیم اون که تا همین چند دقیقه پیش با ما بود ببینه که حالا نیست حتما بلایی سرش ماده آو خدایی من دیگه چه مصیبتیه بارون از کجا پیدا شد چلنقه هوا طریق شد من چشم جایی رو نمیدینه در درم منم جایی رو نمی بینم حتی جلو پامم نمی بینم یه کاری بکن با باز من چی کار می تونم بکنم زد نه طبا می دارم نروری کاری از دزم بردنی خدا تو قصر خودمون رشسته بودیم ببین با ندونم کاری چی به روزمون آوردیم به جای قار زدن بهتره به فکر یرای چاره باشی من هیچ کاری نمیتونم اکنم باید انقدر بریم تا ببینیم کجا کجای این سرزمینیه مرد به راهشون ادامه دادن و جلو رفتن هوا هر لحظه بدتر می شد گرد و خاک همه جا رو گرفته بود پیرزن و پیرمرد دیگه نای راه رفتن نداشتن از پرنده ی هم خبری نبود تا اینکه حال پیرزن بد شد من دیگه نمیتونم را برم یه نه ندارم کاری بکن. چرا فکر میکنی من حال و روزم از تو بهترین من دارم اپا می افتم اگر نتونیم سر سرفنها پیدا کنیم توی این آفا می با این همه گرد خاک من چطور میتونم آه. یه سر سرفنها پیدا کنم آه. چشمم جایی رو نمی بینه من, من دیگه نمیتونم را من دیگه جون نداری تو برا حتما خوبی ده. به خونه این کلوهی ای میتونی پیدا کنی یا نه من حتی نمیدونم کجایی میترسم گیر دیو و قول و جادوگر بیوزدم من که حاضرم سر از خونه دیو و قول و جادوگر در بیارم بلی از این و از خلاس با این خاک و بارون و گل تمام لباسم گلی شده ای خدا از دست تو آرزوهای تمام نشدت زن برنده شسته بودیم چی کم داشتیم که آرزو کردی افراد جلوی خوشی داریم نقا برو یه سهرپنا پیدا کردم آموردم یه کلبه؟ کجا؟ بریم شاید سراف بوده نکنه اشتباه دیدی نکنه پود یا تبفه رو به جای کلبه دیدی نه نه نه یه لحظه تونستم یه کلبه کوچیک ببینم تون تو که شادش کار نمیتونم از این دریم هم دیگه نه نداره میبینی که اوناش بازم دیدم. داریم به داری ای خدا خودت کمکه دست اون کل به از نفذ افتادم دیگه من اینجا آسیاب خودمونه همون آسیاب قدیمی اونم که کلبه خودمونه یعنی یعنی بعد از این همه را ما رسیدیم به کلبه خودمون من که دیگه دارم میگیرم مردم سرمایه هم زدن بریم بر بر بر تو کلبه بریم آتی شوشنگای چرخیدیم و چرخیدیم و چرخیدیم تا آخر سر برگشتیم دیم همون جایی که باید. آه بیا بریم سر. بیا بریم. هر می کشیم از آرزوهای زیادی نه دیگه آرزو خدایا دوستان این هم از افسانه پرنده طلایی که افسانه ایرانیه و برگرفته از کتاب افسانه‌های ایرانی نوشته محمد قاسمزاد است این افسانه پر از درس و حکمت بود برای کسانی که زندگیشون لبریز از آرزوهای بیپایانه زیاد خواهی گاهی باعث از دست دادن چیزای مهم میشه امیدوارم از این افسانه خوشتون اومده باشه پرنده تلایی تنظیم برای رادیو سهیلا خدا دادی راوی شهیندخت نجپ زاده بازیگران احمد گنجی فریبا متخصص محروخ افزدی کارگردان بهرام سربری افکتور نازنین حسنپور صدابردار حیدر صفدری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی هست. افسون زندگیتون دلنشین و مانا تو افسانهای دیگر بتر